نام خدا با عرض سلام و ادب و احترام من محمد علی حسینی غهی هستم زبان آموز آموزشگاه سیتیزم زبان آموز استاد رافع آدم الحاشمی خواستم در مورد این استاد بزرگوار چند نکته ای رو عرض کنم ایشون در کشورهای عربی چندین و چند سال زندگی کردن و مسلط و مسلط و هرفهی به زبان عربی هستند و به شدت به شدت در کارشون عمل کرده بسیار مثبتی داشتند تا الان و قطعا میدونم که در ادامه هم همینطور خواهد بود به شدت زبان آموز رو رفیق خودشون می دونن و سعی می کنن که باهاش خوب ارتباط برقرار بکنن تا اون نحوه صحبت کردن رو کاملاً یاد بگیره و به شدت هم ایشون با سواد مؤلف کتاب هستند، شاعر هستند، عدیب هستند و سناریو نویس هستند و در درس هم فوق العاده هستند، فوق العاده. یعنی واقعاً کامل، صحیح و با تمام جزئیات نکته به نکته کتاب رو درس میدن سوای از کتاب نکاتی رو در دفتر یادداشت میکنیم به عنوان اینکه نکاتی است به عنوان قواعد و گرامر که خود ایشون تدریس میکنن جداگونه و فوق العاده به نحوی آموزش میدن که اگر پنج دقیقه هم در مورد اون بحث صحبت کنن ما هر پنج دقیقه رو کامل متوجه میشیم و اون مطلب رو به درستی در ذهن ما میگنجونن و فوق العاده امیدوارم که عزیزان در کلاس‌های ایشون شرکت کنند و به شدت هم انسان مهربان دوست داشتنی هستند برای ایشون آرزوی سلامتی می‌کنم هم می‌کنم به عزیزان که در کلاس‌های ایشون شرکت بکنن در وبسایت حاضر بشن و از تدریس‌های درجه یک استاد رافع نهایت استفاده و بهره رو ببرن امیدوارم در این جلسات به موفقیت کامل برسند چون قطعا هم میرسند اگر تلاش کنند چون تلاش های استاد به شدت زیاد هست در بحث زبان آموز که این زبان آموز با موفقیت از آموزشگاه خارج بشه و برای من هم توی این چند جلسه که در خدمتشون بودم همینطور بوده.شون ایشون به شدت درس ها رو کامل یاد میدند و درست و دقیق با جزئیات این نیستش که فقط کلیات مطالب رو به یک زبان آموز یاد بدن و جزئیاتش رو خود زبان آموز در سایت های مختلف یاد بگیره نه تمام کلیات با جزئیات یعنی نمیذارن سعیشون که نکتهی باقی نمونه و کارنامه کاری درخشانی دارند و برای ایشون آرزوی سلامتی دارم امیدوارم در کلاس ایشون حاضر بشید و به زبان عربی مسلط بشید ممنونم